حکایت یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود. سیصد و شست بند فاخر بدانستی و هر روز به نوعی از آن کشتی گرفتی. مگر گوشه خاطرش با جمال یکی از شاگردان میلی داشت. سیصد و پنجاه و نه بند دراموخت مگر یک بند، که در تعلیم آن دفع انداختی و تأخیر کردی فلجمله پسر در قوت و صنعت سرآمد و کسی را در زمان او با او امکان مقاومت نبود تا به حدی که پیش ملک آن روزگار گفته بود استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگی است و حق تربیت وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم ملک را این دشخار آمد فرمود تا مسارعت کنند مقامی متسع ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران روگ زمین حاضر شدند پسر چون پیل ماست اندر آمد به صدمتی که اگر کوه روگین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان به قوت از او برتر است بدن بند قریب که از نهان داشته بود با او درآویخت. پسر دفع آن ندانست به هم برآمد استاد به دو دست از زمینش بالای سر برد و فرو کوفت قریب از خلق برخاست ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را زجر و ملامت کرد که با پرورده خیش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی گفته ای پادشاه روی زمین به زوراوری بر من دست نیافت بلکه مرا از علم کشتی دقیقی منده بود و همه عمر از من دریغ همی داشت امروز بدان دقیقه بر من غالب آمد، گفت از بحر چنین روزی که زیرکان گفتند دوست را چندان قوت مده که گر دشمنی کند تواند. نشنیده ای که چه گفت آنکه از پرورده خیش جفا دید. یا وفا خود نبود در آلم یا مگر کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد